حرف قاف و کاف زبون رو بزنید به تای زبون بزرگ قا ق ق ق ک قا گلم خیلی از کلمات فارسی از کلمات خوشمزه که کاف داره کافاش عربیه مثلا میگم کباب کباب کباب این چه فارسیه اما چوچو نمیگیم میگیم کوکو کو. این عربی میگیم چلم فارسیه یک یکی که بگید فارسیه عربیه کباب آفرین فارسیه چلم فارسیه آفن چدو فارسیه اما این کلماتی که میگم رو کنو نوجه کنید کوکو کوکو کوکو یه چی بخونه میگم کیوکو میگم کلوچه نمیگم چولوچه کلوچه میگیم کمپوت کوم کا کا کا اینا فارسی بود اما ما عربی می کنیم. حالا که کافا رو بلدید عربی بگید خب همیشه عربی بگید کافرین تکرار کنید کافرین اکبر تکبیر حرف قاف هم خوب تلفظ کنیم قاف صدا داره ق ق, ق قال اقوام